حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل به بازیم با اش دل به بندیم هشما دل به پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پسمردا نجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پسمردا سلام علیکم حالا احوالتون چطور خوبین خوشین؟ ما آمدیم برگشتیم با یک هفته دیگه یک پس پسمردای دیگه 54 و چهار دقیقه آینده با شماییم این هفته آخر نیست هفته بعد هفته آخر رادیو پسفردو این هفته هم شهر سروده طبق معمول و گفته که در زندگی با خاطره هر روز را سر می کنیم با نوستالژی حال خود گهگاه بهتر می کنیم با بوی عیدی بوی توپ از قول فرهاد عزیز ما خستگی ها را زتنگ گاهی کمی در می کنیم از شهر خود با صد ادا رفتیم تا شهر فرنگ آنجا به یاد شهرمان چشمان خود تر می کنیم. گر نگاری یک زمان سوی لواسان رفته ایم با یاد او تا آبلی جان را مکدر می این عمر ما هر لحظه یک روز گردت خاطره قدرش ندانیم بعدها یادش مکرر می کنیم. با تشکر از شاعرمون این هفته همون طور که ایشون هم خب تو شعرش اشاره کرده بود میخوایم حسابی با هم خاطره بازی کنیم و نوستالژی بازی و دل ورود هر خاطره از در, خاطر در بریم بریزیم وسط ببینیم تش چند چند میشیم هر حال یه ایرونی آقا به چی زنده است؟ خانم آقاین، دختر خانم‌ها آقا به سر یه ایرونی به خاطرش زنده است. پس بخورید و بیا شامید اما خاطراتتون رو فراموش نکنید چون رادیو پاسورده این هفته یعنی هم توی گفتم هفته یکی مونده به آخر. اصلا یک مدل میدونی همچی خاطره تو عجیب غریبیه. یه حالیه یه حسیه یه جوریه اصن یه خ... وای نمیدونم دیگه از ما گفتم بود آقا از ما گفتم بود که خاطره هاتونو با ما در میون بذارید این هفته خاطره بازیه این هفته خاطره بازی داریم پس وردا از دستش دادید نگید نگفته یا گفتیم خلاص جان میگه که شما که دست ایلی ما گذاشید تو دست آقاشون دست بله. سارا خانمم بزنید تو دست ما شیری میتونم محفوظه آقا که کی گفته من دست کیو گذاشتم تو دست کسیه چرا حرف در دو تا بله گفته بله اه. سر عقد نگفته که آلا نه نه شما اه. کجا میدونین من دارم خودمو میکشم سامی زنش بدم بعد الی و سارا اصلا اهل ازدواج و این برنامه ها نیستن از راه رسیده احنا. نرسیده میخوان رو هوا ببرند. ای بابا آقای منافی بله. شما از کجا میدونیم ما اهل چی هستم اهل چی نیستم ببین شما الیجانت سارا جان هر اهل هر برنامه‌ای هم می‌خواید باشین باشین اینجا فعلا کاراموزین دوستان دخترای ما میخوان درسشون رو ادامه بدن تموم شو تموم شد دیگه تموم بعد دیگر. کاراموزی هر برنامه خواستیم داشته باشین دیگه هم چه پسرای زشت چه خوشتیپ زنگ نزنن برنامه خواستگاری کنن مرسی Ah. خب راجب اون خبر علی صادقی اتفاق بامزه براش افتاده بود آره, آره فرشید خیلی جالب و حالا ناراحت کننده هم هست در نوع خودش مثلا که هنرمند ها و سلبریتی‌ها بعضی وقتا تامه کلاهبردارا میشن. چموش ظاهرا علی صادقی که خب هممون هم میشناسیمش هنرمندیشه فیلمای کمدیه یه خونه ای رو می‌خره که حالا بوش کنین خودش ماجرا رو اینجوری تعریف می‌کنه. اونجا یه ملک توی شهرکی به من فروختن علات توسط یه واسطه که مثلا دوستم من میشدن. به حال پولو گرفتن، چکو گرفتن ولی خونه رو خونه هم بود به من نشون میدادن. ولی دیگه وقتی که ماقر شد که جا به به اونجا به من گفتن که برو بچه جون فکر کن پولتو دوز برده و از این داستان ها بعد دیگه از اون به بعد من افتادم تو داستان گرفتن پولم دیگه فکر کن بند خدا علی صادقی نیست همیشه نقشای فانو کمدی بازی میکنه اینه, اینه که همونایی که پولشو خوردن جدی نگرفتنش فکر کن پولتو دوز, دوز برده فکر کن <laughs>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 مشکل من ایجوری حل کنیم وضعیت هم بعد پدرم مریزه فقط میخندم به من میگ فیلم جایی چی بازی <تصفيق> کردی و <تصفيق> بابا بنده خدا نیست کمدیانه این ن میکنن داره شوخی میکنه دیگه فقط میخوان باش عکس بگیرن و سلفی بگیرن ما همینجا که واقعا آاجان از مسئولین محترم غضایی تقاضا میکنیم کار بنده خدا را, را بندازن آ ما هم بگیم که فایده نداره چون فکر میکنن ما هم داریم شوخی می دیگه بالا خری که کار کمدی میکنن از این بعدبختیام دارند خلاصه اگه وکیل جدی سنگین رنگین کسی میشناسین معرفی کنین بلکه مشکلی مند خودم حل بشه باش فقط عکس نگیدن کارشو رو بندازن خودشه که ظاهرن نه کلابرداره جدی میگیره میگه فکر کن پول دوز برده حتی مقام محترم غذایی عجیبا غریبا عجیبا غریبا Oh, yes. اما، اما جناب آقای احمد خاتمی که به حال معرفه بذورتون هستم میشناسیدیش، تا قبل از انتخابات هفتم اسفند ایشون این لیست انگلیسی رو کرده بوده علم عثمون، آقا هر جا میرفت از تو دهنی قاطع مردم و مدار و عوامل انگلیس صحبت می‌کرد. تو خطبه‌های نماز جمعه فرمایشاتی فرمودن که نشون داد طرز فکر ایشون چقدر عوض شده. امروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردمید. هر رأیی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود جالبه ها تا قبل از انتخابات فقط صحبت از این بود که مردم چنین میکنند و چنان میکنند و توی دهن انگلیس میزنند و از این صحبت ها حالا که مردم رفتن صاف به همون لیست انگلیسی رای را دادن صحبت از پیروزی نظامه در ادامه ایشون صحبت بسیار آموزنده و زیبایی هم داشتن در مورد این که زمان شاه انتخابات به چه شکل عجیب. و غیر برگزار میشد می شد و شکر خدا جمهوری اسلامی اومد و دیگه اون سیستم رو جمعش کرد. گوش کنی؟ است خدا به ما داد به اینکه یک ملتی که پنجا و هفت سال در حکومت سیاه پهلوی حکومتگران آدم حساب نمی کردن مردم رو. انتخابات جدی نبود. خودشون نوشتن تو خاطراتشون اونایی که قرار بود نماینده بشن ساواک لیستشون را مینوشت میداد به وزیر، نخصوزیر وزیرم میداد به شاه اونی که شاه خط می زد، نمی نمیباید نماینده بشه. بله یعنی واقعا خدا را هم کرد که جمهوری اسلامی اومد و به داد این ملت رسید. به خدا یعنی چیا غلیسه کاندیدا رو ببرن بدن دست شاه، بعد شاه رو اسمونو خط بزنه بگه اینا حق ندارن نماینده بشن، مگه میشه؟ مگه داریم؟ شکر خدا، شکر خدا جمهوری اسلامی که اومد این مسائل به کل برچیده شد. الان چهجوریه لیست رو می‌برن دو دستی میدن خدمت آقای جنتی. ایشون هم به جایی که مثل شاه بیاد بعضی اسمها رو خط بزنه میاد خیلی متمدنانه دور بعضی از اسمها فقط خط میکشه و به این شکل عزیزانی رو که صلاحیت دارن برن به مجلس انتخاب میکنه اینطوری بهتر نیست؟ روی هیچ کاندیدای اسم هیچ کاندیدای هم اینجوری خط کشیده من فقط موندم احمد خاتمی آقای, آقای خاتمی چجوری این چیزا رو بدون اینکه خندش بگیره میتونه بگه خیلی باید تمرین کرده باشه اینقدر با لحن جدیب یاده رو بلا <تصفيق> چنین مسائلی رو مطرح کنه از زبان شاه و از اون طوره سیستم انتخابات اون موقع خیلی سخته گفتنش خیلی یعنی من واقعا نمید هرچی فکر میکنم ایشون چجوری تونسته از عجیب عجیب هم قریب نبز این توی <تص> دستای ما توی دور از منی فاصله اشتباه من میخوام حس کنم تو را تو هر نفس لب صدای تو لبچه موج زدن تو خوبی که نمیتونم هیچکی ایجاد بیاره هرگز جاز عشقه واسه عشق دیگه ای جایی ندارم باور کنین منم اونی که بیت دیوونه میشه دنیا میدم واسه اینکه که نری و همیشه اما بریم سراغ خاطرات و نوستالژی‌های های توی هر گوشه این شهر دارم از عشق تو یادی بیانیه شماره 995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 خودشان برای نوشتن کتاب خاطرات عشقی آماده های رادیو پس بس دا دا دا دا دا دا بست. دا دیواره این شهر همش از سو تو یادگاره توی این کوچه تاری منو تنها نمیذاره یاد حرف های قشنگت که تو قلبم لونه میکرد یاد دلتنگی چشموت که منو بهونه میکرد دل من هواتو کرد بخ خدای نازنی خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا بالا بریم پایین بیایم یه بخش بزرگی از خاطرات تاثیرگذار و نوستالژی های ما رو نوستالژی های تشکیل میدن در میون این خاطرات و نوستالژی ها اشق اول همیشه یه جایگاه خیلی خاص و ویژهی داشته یعنی اصلا همه اشقای زمین یه طرف اون عشق اول یه طرف یعنی مورد داشیم طرف با یه پدیده ای مثلا تو مایه‌های برد پیت درگیر رابطه عاطفی و عشقی و لافتر خوندن و اینا بوده اما همیشه چهره غلی هم جلو چشش بوده بله ب... حالا قلی کیه قلی حالا یه آدمی بوده حالا 20 سال پیش مثلا وقتی تو کجا مثلا تو بچه مدرسه ای بوده با چرخ دستی تو محله‌شون با قالی می‌فروخته بعد مثلا چون یه بار قالی به اجداد گفته قابل نداره خوشگل خانم این عاشق شده مثلا یعنی واقعاً این عشق اول چیه که از ذهن پاک نمیشه این چیه؟ جالبه که توتوی بیشتر عشقهای اول که در بیاری میبینی با هر استانداردی با هر استاندارد که کنی چه ظاهری چه باطنی طرف زیر خط همه چیز بوده کلن ولی خب لهم هر کاریش کنی باز همش اول محصوب میشه دیگه توی ذهن طرف همچین مثل آلپاچینو میدرخشه از موخا طرف بیرون نمیره که نمیره که نمیره اگر من از مهسا خواهش بکنم که یه ذره از اون ماش به تو بده قول میدی که نری رادیو پسورد برقرار باشه ساسان هستم از باکو ب... اینم دیگه مدل جدید بود دیگه ببینین موی مهسا که هیچ حتی اگر الی محاشو در سمت راست کله بنده و سارا محاشو در سمت چپ کله بنده بکاره ما دیگه موندنی نیستیم من دیگه رفتنی هم من خودم شخصی دارم پس من موهامو نگهر میدارم نگه, نگه دارم کسی گفت بعد بزنی موهاتو نه دیگه این دوستمون گفتن بایدیم به تو نه نه شما نگه دار شما همه موهاتون رو دارین سارا الی چه خبر سلام سلام. سلام. بله بله. بله بگم به همه این کسایی که دوست ندارم من بله بگم و سه تا بله بگم برای بله اونهایی که دوست دارم خب حالا. برو بریم ببینیم کامنت ها از فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام آقای مهدی یادی کرده از قصه زهر جمعه خانم مریم کار نوشتن و یاد تو سفایستادن ها می افتن وقتی کپون اعلام میکردن و همه حجوم می آوردن. چقدر بد بود اون روزا <تصفيق> آره بود. خانم مریم نوشتن که وقتی بچه بودم یه بار مامانم کتک زد منم اومدم تیریپ فیلم ها لباس رو جم... جمع کنم که برم اومد دید یه بار دیگه کتک هم زد که چرا لباسایی تا شده رو به هم ریختی یادش به خیر کده قرام ملست این خانم مریم خیلی شیرین زمونه خدایی شیر زبونه خوب بود. آقای محسن زارهی روزی رادیو پسورده و شخصیتاش هم برامون نوستالجی میشن باره hey, <مازم> <مازم> خانم راهیل عاملی هم نوشن خونه تکونی ای و تمیز کردن امباری من چند بار داشتم زیر رخت که خواهرم می روم که بازی کنیم خفه می شدم آخه قدیما <مازم> تخت و این چیزا نبود که لافکرسی بود لاوستا راست می گیر رخت خوابایی <مازم> می چیدن روهم <مازم> خانم موجگان کاشی عزیز اون دوتومنهای کاغذی که زمان شاه از بابا میدی می گرفتم ارزشش از تراولای امروز خیلی برام بود. هم بیشتر بود بکنم دیاترو دیگه نمیدونم شما یادتونه خب این کامنت ها بود و من یه تعدادی از امضا ها رو هم بخونم نه وایس یه چیزی من من یادمه یعنی چیل من زمان شاه من من کجا بودم یعنی چی من یادمه این چه حرفیه من من من من راه ی ارتباطی راه ی التواتی رو خانم سارا براتون میخونن 97 ساله هستم از فراد نه شما جمعی گفت آها کلن دوستانی که آقا راهای ارتباطی, راهای ارتباطی, ارتباطی با برنامه تلفون ها 2420 211 2433 2420 2463 -24 2420 -22 226 21 79 39 و تلگرام ات پسفرده گرام برو اله موزیکو برو, موزیکو برو. موزیکو برو. اصولا قدیمی ها اکثر نوستالیجای آشقانه شون برمیگرده به یه کوچه که یه درخت توشه و جاو و عطر و بوی یه دلدار دقت کنید عطر و بو و یاد یک دلدار توش مشخصا نه خود دلداره نیست اینه که اصولا قدیما خاطر بازی های آشقانه اونجوری که استاد مشیری تو شعر معروف کوچه گفتن به یه کوچه ختمی شده قدیم قدیما پیدا کردن مثلا دوست دختر یا دوست پسر ببین راحتیا نبود مثل الان که پسر بعد کلی سر پا سر کوچه یا جلو مدرسه وا که بالاخره شخص مورد نظر از مدرسه یا خونه بزنه بیرون که بتونن با یه متلکی نگاهی لبخندی چیزی بهش ابراز علاقه کنن اگر اگر خانم مورد نظر مثلا سکوت به همراه یه لبخند ملوس مثلا یا با یه لحن مثلا کشش داری مثلا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 بعدن که گذشت و این همه مثلا چند روز گذشت با بررسی تمام جوانه به امنیتی و اطمینان از اینکه حالا کسی خونه نیست حالا اگر هم حسگرم کاری متوجه اون نیست اون وقت بود که به بهانه تماس با همکلاسی یا مثلا دختر اینا شماره رو وارد میکرد و این تماس آغاز یک دوستی عاشقانه میشد خلاصه میبینید که ماجرای های خاطر های قدیمی ها همون در حد کوچه و پارک و شما تلفن های اون هم کیوز که تلفن خیلی وقت دا حالا خیلی وقت تو خونم تلفن نبود که البته خب از هر کدومشون هم بخوای از این خاطر را برا تعریف کنن و عید نیستی آهی بکشن یهو بگن بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم بی تو مرتب شبی با آزدان کوچه گذشتم از این پیرمرد پیرزنایی که تایه زوج جوون میبین شروع میکنن از خاطرات عاشقانشون تعریف کردن حالا تا اینسط پیشش داشتم منغرور می زدن ها امروز تو هم همین شد یه پیرمردش به خانمش میقام میزد که چرا یه کیف مخصوص پول اتوبوس در نظر نمیگیره که مجبور نباشه 5 هزار یا ای دی رو بده برراننده پیرزنند داشت بر خودش سییرلق و غررم می کرده نمیشین چی میگه یه دختر پسری دست در دست از در وسطی سوار اتوبوس شدن همینطور که یکی تو مردمونه بایستاده بود یکیپ زننه هنوز دست هم گرفته بودن گرفتهن رو عاشقانه خیره بودن به هم کللا انگار فقط همون دوتا بودن تو دنیا خلاصه پیرمد پیرزنه در یک آن قور زدن و بیخیال شدن رفتن سمت هم عین اون دوتا دست همو گرفتن و پیرزنه رو به دختر گفت به به منو یاد جوونی و عاشقی کردن خودم انداختی. پیرمردم مردم رو به پسری آهی کشید بعدم چشم در چشم خانمه شد و خوند آشقم من یعنی این خاطرات آشقانه خوب به کار آشتی دادن و تلتیف و زمیانا. بابي اون کلاغه رو ببيني آره ميبينم چطور کلاغه ديگه اون کلاغه ماددا. تو از کجا میدونی آخي حالا اون يكي بابي خود ميكي نه نه اونا اون او شوهرشه اينو چند وقت باهام به مشکل برخوردا ايجو داغون شد آ... جای خود تو کن. یه شد. شده يا بري جاي خوبي بستاري كن يا مدت بهتر شو شد کارشناسي کلاغشناسي واسه من بابي من امارن کلاغ نره رو دارم ميرم پارک بغلي ناغلا با یه کلاغ ماده دیگه گرد ميگيرم باهاش ايجو بزن من بزنم این کلاغا رو برام خفي منو تو به هم چقدر بدم میاد از این جانورد کم گمشه چقدر تو زبون نفهمی واقع صدر آمد به کلاق بابا ساکت شو بابا از دست تو ببین من نمیدونم چه این روز همش تو خاطراتو گذشته سیر میکنم خبیش الان میخوایی بیافتی ببینی ما راحت چیم پس نه بابا چی میگی تو یه زمانی همه دخترای محل عاشق من بودن آره بام در کدن قیافت واقعا مرازنده بوده جون خودم ببین بابا دفن تو کلاخشو ناسو پی ببین ببین یعنی هر گوشه این محل چی می‌رفته یک از پشت پنجره زاخ همه چوب میزن ای دل قافل ندونستم قدرون دوران آجا از همون موقع ها منم با خودت صفا می‌کردم یا بعدال اینجوری شدی سرت فلند نظر رو یادت هست سر کوچه فخری می شستم. آره یادم چطور مگه یه بار منو صدا کرد دم خونش اون هم بغل تیر برق واسطه بودی علامت می‌خاست قله بجری بره برق نه بابا بابا جوون تو داری هیف میشی دوستدار داماد من باشی. دو برای فیلم سینمایی دار تعریف میکنه. خب تو چی گفتی بگو بابا؟ گفتم شرط به احترام شما واجب. ولی ازدواج بالوپر منو میبنده. خوات. من مرغ طوفانم. اینو بختیار گفته بودم نه بابا بختیار از من یاد گرفته بود دیگه. بابا یعنی فکر کنم همین سرتیب به رسونده بود. خب پس به سرتیب جواب رد دادون. دیگه جوون مودم کلم باتت. ببین مطمئنی میخاست دام. مادش داش من میگم شاید گوماشته چیزی میخواسته ها. آره بابا ايش میلیم منو ببینم دارم واسه چی خاطرات عاشقانه‌م تعریف میکنم من برم سر قرار باره بابا بابا بابا من با هدیه تهرانی قرار داری آره؟ نه با هم میخونم تو قرارداد عمو خالو من واسه تو تره خوردم که زنده بود بعد بخ بابا ببینیم دور شو شد. شاید این برگزار داد من مطالعاتم با دامه هم از بس که نحس دیه. ما maşmaşyla da biya tappa yok yok sabah sabah haftanın mende din aktarma dibimde bilirsin غذاش بخیر موقعی رفتیم تو دریاچه ارومیه شنا میکردیم و کلی نمکی میشدیم چش و مون میسوخ آب میرفت دهنمو بعدش هم ما کلی خیار دردامون درو میکردن نهایتا کلی خوش میگیداش واقعا یادش بخیر واقعا یادش بخیر بله خیلی ممنونم من آقا اون بخش خیارشو نفهمیدم میرفتن دریاچه ارومیه شنا میکردن نمکی میشدن بعد خیار میمالیدن بهت چیکار میکردن با خیار یکی توضیح بده سعید تو میدونی تو که به حال اون سمتی به اون سمتی که آره. آره. آره. ن... بعد شناکه میکنی ممکنه بره تو چشت اه. آه. و تنها چیزی عزب. که میتونن به خودشون ببرن یه خیار هر, هر جای آب وارد چشم شد خیارو میشکنن و میزن روی چشم بامنزده. تا سوزششو برطرف میکنن جالب نمیدونستم خیلی ممنونم از تماس شما اما خانم آقایین دختر خانم‌ها و پسرا ما تو این برنامه توی یکی دو سال اخیر خب از های گوهروار آقای نادر قاضی نماینده ارومیه توی مجلس زیاد فایل صوتی پخش کردیم چون ایشون هم به سهم خودشون حرفای چمن در قیچی خوب زیاد زدن ولی ما تا حالا فکر می‌کردیم آقای قاضی پور اصولاً یه نموره مثلا شیرین احوالن فقط و به همین دل حرفاشون سوژه میشه اما با یک فایل صوتی و تصویری که اخیرا از های انتخاباتی ایشون بیرون اومده مشخص شد نه تنها ایشون چی نحوال هستن از نظر فکری هم متاسفانه در قرون وسطا به سر میبرن جوری که آدم میمونه از نظر فسیل فکر بودن ایشون آیا مثلا از آقایان آقایان مثلا رسای کوچک زاده جلوترن یا اونها جلوترن حالا ما یه بخشی کوتاه از حرفاشونو که البته به زبان آذری هم هست پخش می‌کنیم بشنوین بعد سعید قره برامون ترجمه می‌کنه بذات خود کیفیت صداش هم بده. سعید میتونی برامون خیلی خلاصه بگه. آره، فرشید قاضی‌پور. بخش عمده‌ای از حرفایشون به خاطر رکیک بودن اصلا قابل پخش توی رسانه نیست، ولی اون بخشایی که قابل پخش هم دسته کمی از قبلی ها نداره. مثلا اینشون فرمودن که مملکت را به آسانی به دست نیاوردیم که هر روباه و بچه و کرعلاقی خیلی عزم میخوام واقعا که این اینو من مجبورم به زبان بیارم. بفرستیم اونجا مجلس جای همون کلمه نیست مجلس جای زنان نیست جای مردان است بفرستید سرشان بلا بیاورند آبریتان برود بله. یه جوریه که ما ترجمهش هم بخوایم بکنیم نمیتونیم البته یه بخشای خیلی زیادی بود که اصلا کلن نمیشه حرف سد راجه بهش من نمیدونم چی بگم قاضی پور که حسابش معلومه خب دیگه اینا واقعا آقا با مذه مملکت ماست که ایشون با این تفکراتی که داره الان 8 سال توش نماینده مجلس برای 4 سال دیگه هم شده یعنی حداقل 12 سال توی مملکت این آقا نماینده مجلس بوده که در مورد خانومها ها همین تفکراتی داره یا مثلا ایشون در مورد مردم قزوین و نماینده سابق این شهر توی مجلس خب حرفای میزنه که آدم کبود میشه از خجالت ولی جالبه که حالا یه دسته آدم هم پای وضع ایشون هستن براشون میکشن دست میزنن. جالب همین این آقای غازیپور به خاطر برنامه فیتیله ها چیزی نمونده بود جنبش ضد فارس را بندازه توی آذربایجان. راستش ما خیلی تلاش کردیم با این ماجرام شوخی کنیم ولی خواهی این حرفال لامه هر کاریش کنیم آخرش غمه یعنی اصلا غم، غمگینه غمناکه چیکار کنیم واقعا آقا, آقا تو هشتاد میلیون جمعیت این همه آدم تاثیر کرده با شخصیت با حال تو همون ارومیه این همه آدم با حال با, با شخصیت و تح... من بعد نماینده مجلس بعد بشه آقای قازیپور قازیپور که چاید قاطیپوره بسمن چی بگم والده مجده مجده قابل توجه کلیه اشاق و کسانی که عشقهای آتشین در سینه دارند اگر نگران این هستید که روزی بر خاطرات و ماجراهای های عشقیتان مبار فراموشی بمشیند اگر میخواهید یاد و خاطره عشق اول خود را همیشه تر و تازه و زنده نگه دارید اگر تمایل دارید که تفکرات عشقی و عاطفی خود را با تمامی مردم شهر در میان بگذارید با مؤسسه تماس بگیرید. چاپ و تولید انواع شبرنگ پشت بانتی، پشت کامیونی، پشت اتوبوسی، پشت موتوری، سایر پشتها، حاوی اشتال و جملات عاشقانه و زیبا با متن دلخواه شما بی نگاه اول تو مرا در گردن زندگی چپه انجام انواع فتوهای متنی و تصویری به یاد عشهای همیشگی و خاطر انگیز در نقاط دلخواه از بدن شما. اوه اوه اوه داداش قربون دستت همون بذری تتو خودمونی‌ترم هست بهتر از طرز ساده‌تی خیلی زیاد. فر کردن و تغییر دادن فتوهای قبری و انجام تتو جدید. ببخشید تتوی که چمهای پیشم دادن دور نافم زدی نشه من کام بیس میشه این بیزش رو پاک کنیم بعد الف و نون بذاریم بشه کامران مرسی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 با سلام بیسته کسی شب را ضمن تحییر از حضور همه مقامات ترشد نظام در مراسم تحشیر جنازه آگتالله باوز تبسی با مروری بر عناوین مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز می حضور احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه در تهران و نگرانی ها از اینکه با وجود این همه اختلافی که دو کشور سر همه چی دارن این سفر اول آخر ایشون به ایران باشه با گرفتن موج نوروزی دست فروشی در گزرگاه های مختلف شهر های کشور و گمام نزنی های در زرفیت های شغلی برای گروه های شغلی چون داد بزن، خفتگیر و بنجل انداز در این معابد و عامل آمل اسیدپابشی به دو زن سمنامی و در خواب سه که خب حالا از همین یارو عدس اون اسیدپاش اسفانیارم بگیرید چد بشنستدش بالاخره همکارن نه مهمترین سرخط ها خبری ساعت گذشته را شامل می اینک مشروع خبرها با همکارم بی بوی و سلام!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 پاگشا و باقی مراسم این از خانه خارج شود احکام صادر شده اجرا و از حضور ایشان در این مراسم جلوگیری خواهد شد وی هدف دادستان تهران در این زمینه را جلوگیری از فتنهگری ایشان دانست و یادآور شد همه فتنه ها از همین عروسی ها و عقد های فتنگرانه شروع میشوند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 بله ولی بفهمی. بعه چیزی میگم اید شما چیکار میکنید بولبول؟ بول؟ والا منو دکتر قصد داریم یه سری مطالعات عقب افتادمون ادامه بدیم. ها خیلی خب واچی خندیدی جدی پرسیدم میگم می چیکار میخواد بکنید ایده امسال خب منم جدی گفتم دیگه یعنی چی یعنی ایت می بشینید تو خونه مطالعه کنید واقعا؟ آره والا اه اه. خیلی عقبیم ما میکروفون تعال. من چی بگم الان یعنی جایزه نوبل داغونتری زوجی سال بعد بدم به شما دو تا دیگه مایی بگو میخاستم بگم بیایم اید با هم بریم شمال با دستتون بکن... درد در کنه ولی منو دکتر فکر میکنه ادم باید از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنه واش باشه, باشه با بله بله با تا من حالم به هم نخورد بله ای خوب دارم میرم ولی این برخوردتون درست نیستا میگم یعنی زودتر بولو به مطالعه برسی اقب نیفتی دیگه بل بل با دکتر بله اه. باشه خدا افس خدا حافظ. خدا حافظ. یعنی همه همکار دارن ما هم همکار داریم نوه نتیجه انیشتن آوردن اینجا برام کار کنیم اید مطلعه می اح اح اح حالا بد شد بله هم در خدمت کاروشیابس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جامباقای جامبسن هنگ است بله. هنگ جان ما خبر دو بیم. خبر دو با آزاد باشین آقا آزاد باشین منم سلام عرض میکنم آزاد آزاد فرودان بله بله آزاد باش خوبه انجام شنیدیم که قرار خب. طرح حبس مجرمان در خامنه اجرا بشه چی این ماجرا شینن عرض کنم که این طرح قراره فقط برای مجرمانی خب. تهرانی به صورت آزمایشی انجام بشه فعل سران یعنی چی آخه چه جواری تهرانی شهرستانیش کردی خب واسه همه اجرا کنید دیگه نه ببین بیبی... آقای عزیز میگم آزمایشی خب. اسین طرح بنابراین فعلا فقط به صورتی محدودی در تهران انجام میشوند. خوبه والا والله دیگه بی بین خلافکار تهرانی و شهرستانی هم فرق هست. نه خیر. خب حالا چه جوری این طرحه؟ نه. نه. نه ببینید عرض کنم که مقرر شده است که با تشخیص غازی بعضی از محکومین به این شکل در منزل حبس بشه یعنی یه دستبند ببندن و توی خونی خودشون باشن؟ نه یعنی الان موسوی راهنمایی و کرج هم از این دستبنده دارن؟ آقا جون نه خیر اون آلم ما نیازی به دستبند ندارن. خاتمی ته... چی سرنگ خاتم نه خیر چیزی بهش واس نیست ها چون شنیدم که عروسی دختر موسوی ازشتم بره گفتم شاید از طریق دستبند کنترلش کردی نه بس به پادر ایشونم دیگه سرنگ بله بله خب بالاخره دستگاه امنیتی حواسش به آه. همه هم ولی سرنگ خدا وکیری این ب... دستبند نستبند وازیاتون واسه قانون خانواده زرر داره بله یعنی خی... چی چی چه رابطه دارد با کانونی خانواده؟ ببین رابطه شینی که دیشب خانم من میگفت فایده یه دونه از این دستبنده بگیرم بعد ببندم که همیشه امارت تو داشته باشم و این حرفا. بالاخره اینم کامپ یعنی چون بیرون اصلا موجود نیست این دستبنده آقا خوشا این زنا میرن پیدا میکنم ش... ما این چیز رو چی میگی تو؟ خب شما کجا حامی میره؟ که نمیخوای خانم مت بفهمه؟ ای بابا سرنگ بالاخره آدمی با توانایی و محبوبیت من آه. خیلی جابد بره که خانمش نده فهمه دیگه و بگیر دیگه از یعنی حال بله دوباره شما چه تا پرت میگیر دیگه دیگه کاری ندارید بنده بره سر یعنی چی تازه شروع کردیم وش میخواای بری از پیش من چرا نه ببین یه امروز رفته بودی رفه هم چه نه نخر بنده اینجا معموریت داشتم جای نرمخه دیدم همه مسئولین رفته بودن تشریجه نه اجاق باعث بله گفتن شما رفتی دیگه حتما. دارن جون من یه صحبتی بکن منو بذارن جایی. یعنی چی چی من شما روحانی هستی بچه طولیت حرم بابا اونجا روحانی نمیخاد که اونجا پول شمار میخاد منم استاد پول هم دیگه آقای جینی علی ببین خجالت بکش پاتا از تو کفچه روحانیت در میارم اینم ببین این جینی ببین حالا رئیسش هم نشد بگو چیش کنن منو بذارن مسئول نگهداری میکروفون مثلا عزیزی من منم راضی ام به جانت راضی ام شما ساکت باش اونجا جای افراد صالحا م ردیه تم عادث. عجبا یعنی من غیر قابل اعتماد شدم سرهنگ این بود قرار ما آقا جون بیبیم واقعاً... شما دوباره داری بحث و خراب میکنی من دیگه باس برم آقا خدا نگرد دلمو شکستی سرنگ؟ بله بعد از این همه سال یعنی تو به من اعتماد آقا. نداری دلم گرفت یعنی دلم باید بخونم تا این دل لامه سبارو هی بابا. بله دوباره شروع مم. کردی شما دیگه واقعا این وز خجالت ها بره. من نمیدونم چرا به شما با شما برخار نمی کند آقا جو واقع. دلم مثل دلیت آقای عزیزی کونه شقایق آقای میکروفان کن ششم دریای بارونه من عزیزی من شقایق نمی خواهیم صدای شما رو بشت نمی گوش کنی من میرم اون بردیگه چه گیری داریگه من میرم من خودم اون میکنم بله. دلم مثل دلت خونه ول شغال... بله ماجرا ما درام نیستیشم شقایق شقایق در زمان یکی شغال... شغال... دو بله آقا چه بله منم سلام عرض می کنمم خدمت شما و تمام شنندگان محرمدون بنده و قندی میخواستیم از شما و تمام دستن در کار های رادیوی بامزه و دوست داشتنی پس فردا و همین جور قدری کنیم از حضور این بچه های جدیده بامزه و خوش صداتون با تشکر من این قندی مرسی بله جناب سرهنگ بودن یه مدل دیگهش یه مدل جناب سرهنگ دیگه بودن خیلی ممنونبد شما. دیگه عرض و حضورتون که لطف کردی دیگه همین چی بگیم دیگه اما بریم سراغ خاطرات و نوستالجی های کودکی که امروز داریم رجبش حرف میزنیم اصولا ما آدم وقتی بچه ایم هممون خودمون تیکه پاره میکنیم تا بزرگشیم. شیم یعنی من قول میدم قول میدم صدی 90 بچه ها به بپرسی آرزشون چیه میگن این بن ما بزرگ شدن یکی از چیزه و است که هر نو بدی علو رمنداست و این بسد چون آدم تا بزرگ نشود که نمی نمیتونه دست استفوچلامو میاد بعد همین شازده وقتی بزرگ شد ازدواج کرد آوار مشکلات زندگی دوسرش خراب شد هی چپ میره راست میاد میگه وایادت بچه بودیم. همه دغدغمون این بود بری فوتبال بازی کنیم پشت سرم پیش معلممون هی خود شیرینی کنین وای کجا رفت اون روزا اینه که اصولا آدمی زاد گونه ای است خاطر زده دلتنگ خسته و آهکش جان آهکش پش نیستا من الان خودم براتون آه سوزناک میکشم جان داز اینجا آه کجا رفت اون بچگی آقا هی از در و دیوار بالا میفتیم هی میزیم تو سر کله هم دیگه ه زنگ خونهه رو زدیم در هی سر سرکات کاغذ میشه تو خودکار فوت می کردیم یعنی از این لوله خودکار می زدیم تو پوست پرتقال فوت می کردیم سر صورت این اون نمیدونم گچ پرت می کردیم تو هی معلم ها رو سوچه می کردیم. سر و صدا در می آوردیم میزار رو تکون میدادیم با بگم بازم یا دیگه حضزار از اش چشماشون چشما دیگه همجوری دیگه مردن دیگه ریختن. ای بابا خاطرات دیگه, دیگه درمون قطعی نداره که. فقط دردش همجوری کم و زیاد میشه والا من از اون خاطره کودکی ها من از این ستاره ها پولکی ها من از اون گرفتن غاس دکا من از اون دادن باگ با دکا میخونم میخونم میخونم میخونم من از اون شوق رسیدن بها من از اون نفسین پر نخش و نگاه من از اون جوونی شور و شرر من از اون های پر از خطر میخونم میخونم میخونم میخونم, میخونم بچگی هم روستا زندگی می کردم هوای تازه میوه هایی که از درخت می چیدیم گل تو کوچه ها شنا تو جوبه کنار خونه قدیمی ننجوری نا یادش بخیر بهترین خاطرات مال همون روزست تا سال آخر دبستان که اومدیم تهران این سریا دوستم هم از همون بچگی تو روستا می شناسم خونوواده هم با هم تصمیم گرفتم بیان تهران اون وقت پریشب خونهی خونه ایننا بودم دیدم داره برای یکی از مهمونه خاطر از میگه که رفته بوده استخر تو علهیه با مامانش. سپاه رو تو آبو اونجا تجربه کرده گفتم یا اولین باری که شنا کردیم که تو جوب محله پرید وسط حرفم که چی میگی شرمین من تو تازه راهنمایی هم کلسی شدیم تو که بچگی ای من نمیدونی که گفتم ای, ای, ای, ای یعنی یادت رفته رستامونو نکنه فکر کردی از اول تو همین برج بابا تو تجریش مینشستین گفت نمیدونم چرا اصرار داری خاطرهای خودتو من نسبت بدی. بعدم به تعریف کردن خاطره ی ادامه داد یعنی من اصلا نمیفهمم اینا رو که نوستالژیهاشونم بر اساس مود و بسته به مخاطب عوض میشه خب باز الان فیسبوک هزه هی هر روز یاداوری کنه سالها پیش چون این روزی فلان خاطره ماشین مشکی منگلی ارزون و بیموعتلی ماشین مشکی منگلی نه داره نه سندلی. دا حالا چرا اینقدر پکری شما بابا بیخیال بابا دنیا دا دیگه زونم کارو کاسبی یعنی خوابیده با شبهه ای همه کاسب دارن چی؟ بادامشون گردو میشکلن که زدی میگی؟ این خبر کارو کاسبی چی هست شما داشت؟ لبازم خونگی؟ زونمه آه این چی؟ تلگرامه موبایلته اتفاقا ما حال میکنم با کار شما میشینی تو مغازه وسط ایتی یا عالمه روشن و لباسشی و چه میدونم گاز و یخچال و اینا مشتری ها میان یعنی ایزنس میخرن میرن بدون درد سر دیگه زونه عذیت میکنی یعنی کلن دارین مگز میپرونی چی زونه ما یعنی همین تلگرام نبوده اگه شما میپوسیدی همش داری دک میخونی دیگه ای بابا چی بگه؟ دیگه فشار اومده که اینقدر دمقی دیگه شما ببین آخه بالاخره مردم تی مصرف پصرف که میکنن یعنی چی آخه؟ جونه آه یعنی همه یا قسطی میخون یا تکی خب تو نمیدی بهشون آه راست میگه دیگه آه تو این مملکت تی باست تو به کسی زن تو بدی تی... بدید از سه طرف میره حالا شما باید چیه کفشوانی باید بپوچیم و داییدون مال اقصاد. آره راست نگی دیگه کار ما این که خب نقدیه چیه خوبه دیگه مایش خوبه و نقدیه باینا آخه دیگه کناهی تاکسی من بخواهم بگیریم که فاطعه بخونده است تلگرامه بازاره بله والا چی بگم دیگه اینا خودشونون بالا نشستن ای میگن تی درست میشه درست میشه اول گفتن این تحریما رو برداریم همه چی درست میشه بعد گفتن برین تی رأی بدین مجلس نمیدونم درست شامه تی ردیفه هیچ خبر خبرمبری هم نیستو ای بابا باش میگم حالا اما کاسبیم تی یه دورایی برحال هم شما دیگه یه دونه از این تلویزیون گنده هست میخوره سینه دیوار از این چیزی بزرگا دیگه سلپنزا این چینا آره همون یه دونه به ما بدی با چکه مدت دار در میاد داشت آه چکی نمیدی با سفتی تو همه میگم دوتامون کاسبیم نکرتم کاسب چماله رو نمیخوره که شما ای با باشه با راحتی دیگه بالاخره مالته تا دیگه اختیارشو داری والا همین دیگه داشت کشتی ما رو موبایل رو خیال شده دیگه دیگه بگیم دست زنس چی بده ما نمیده چکی همین کاسب نیستی شما سی بگم والا ها سلام کاسبای بعدی دلنگ, دلنگ دلنگ دلنگ بوی بوی, بوی گلای مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست وقتی میای آیی بخار میا بوی گله میو عطر کمان نسیم سوز از روی سبز زار میو شراب صد سالت تویی صورت ای آنال تویی اگه قمار زندگی اونیک تک فورت تویی شراب صد سالت تویی چون ای آنال اگه با ما زندگی پونی که تک حال توی پونی که تک حالش آیا از حضور یک فگر در عروسی دختر یک فتگر دیگر نگرانید؟ آیا از برگزاری مراسم پاتختی با حضور تعداد زیادی فتنگر در یک مکان خوشحال نیستید؟ آیا از اینکه یک فتنگر بالای سر یک فتنگر دیگر غند بسابد ناراحت هستید؟ دیگر نگران نباشید واحد خال زنکی سیستم امنیتی جمهوری اسلامی ایران دیگر اجازه حتی پوست کندن یک موز را در مراسم عقد و عروسی به فتنگران نمیدهد؟ با به نظر شما هماسه جلوگیری از حضور خاتمی درخت دختر موسوی چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ جاید. این مشت محکمی بود به دخان بار فتنگران داخلی و خارجی امال آل سعود، اسرائیل، قاسریف و همه بدخواهان نظام و انقلاح احسند, احسند، ما مراسم عروسی و عقد فتنگران و نفوزی ها را به اعضا تبدیل میکنیم دیدی برادران یادی پایگامون عروسی دختره فتنه‌گره چقدر خوب بهم ریختن آره خواهد. به نظرت این برادر رو واسه بهم ریختن عروسی فتنه‌گره نیوی خواهد نمیخوام ها ما به عنوان یک خواهر بسیجی همیشه دوست داشتم با یک برادر عروسی به زمینه نازیک کار کنم منم هم همینطور با ما یک آب خوش هم از گلو فتنه‌گران پایین نخواهد رفت چه در عروسی چه در عقد و چه حتی در بله برون و جهاز برون باحد خال زنکی سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی ایران اما یکی از خاطرات و نوستالژیای دوران کودکی که واقعا دل انسان رو به درد میاره و باعث میشه گاهی آدم از ته دل آه بکشه و بگی یادش به خیر مربوط میشه به ایام عید و خاطرات عیدی گرفتن از بزرگترها البته تر از این خاطرهای تکرار نشدنی اینه که از یه سنی به بعد به خودت میایی میبینی که نه تنها در ایام نو روز کسی بهت عیدی نمیده بلکه یه عده جغلم در دید و بازیت های عید همیشه دورت میکنن عیدی میخوانه ازت. آقا واقعا اینو دیگه آدمی که خودش درگید افسوس خوردن برای خاطرات خوش کودکیه نمیدون کجا دلش بذاره این بحران که به نوستالژی کشنده شبه عید هم معروفه و در اینه بزرگالی بر روز میکنه یکی از بحرانهایی روحی خیلی مهم تو زندگی بیشتر آدماس که خب متاسفانه زیاد در موردش صحبت نمیشه و در بیشتر مواقع این بحران پشت همون تبریک تبری گفتن نه و تا آروف اتدید و, و بازیدید های ایام ای و اینا از نظر دور میمونه به چش نمیاد در حالال ما وظیفهمون بود تو این روزا که کم کم داریم به عدم نزدیک میشیم در این مورد اطلارسانی کنیم بلکه اندکی از درد و رنج جزیزانی که با چنین بحرانی دست به گریبانن کاسته بشه.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 رافیه خاطرهای زخمی پره نستاشی روزای که بود پر بغزن پر بغت و انتظار انتظاری و بس مهار انتظار با تو همه سفر شده دوباره میون جده شما دلم پره بیا بازم با هم دیگه بریم سفر جای ما جا خالیه منو ببر منو ببر یه عمر جاده شما منتظر عبور ماس نمیدونه یکی از اونون دو تا غناری میشهدار